دو کشمکش نخبگان خصیصه‌های ساختی کارکردی جامعه ایران و نیاز به نظریات رئالیستی جامعه ایران در ظهور تاریخی خود های ساختی کارکردی نامنظمی را آشکار کرده است بنابراین برای توضیح بیشتر این تحولات تاریخی باید از مدل‌های نظری واقع‌گرایانه یا رئالیستی استفاده کرد نمونه ای از این رئالیسم را در آراء کسانی مانند ماکیاویلی و سپس موسکا و پارتو میبینیم. زمینه های سیاسی اجتماعی که این نظریه پردازان در آن میزیستند، منظور ایتالیا در آن دوره به گونه ای بود که به سمت نگاه رئالیستی سوق یافتند. البته در اینجا از ابعاد تجویزی تئوری های آنها که به شدت بر آراءشان سیطره یافته است، فاصله میگیریم. برای این کار دلایل معرفت شناختی و روش شناختی داریم تنها از برخی از ظرفیت های رالیستی آنها با علم به محدودیت های نظریشان برای زمین کاوی تاریخی ایران استفاده می کنیم جابجایی نخبگان یکی از این نظریه هاست بر مبنای نظریه رالیستی جابجایی نخبگان تاریخ جوامع از بسیاری جهات تاریخ نخبگان است اغلب گروه‌هایی از نخبگان با یکدیگر در کشاکش هستند در این بهبُه هر طرف به نوعی میکوشد بر امواج توده منفعل سوار شود آنها هژمونی ایجاد می‌کنند و به تعبیر کسانی چون موسکا طبقه حاکم را پدید می‌آورند پارتو فیلسوف اقتصاددان و جامعه شناس اعتقاد دارد خسیسه نخبه‌گرایانه حوزه سیاسی واقعیتی است که آرمان آزادی و برابری را محدود می کند. او در کتاب مشهور زن و جامعه جمله معروفی دارد. تاریخ قبرستان اشرافیت و نخبگان است. این نخبگان هستند که سازمان می دهند، نظمی را به هم می زنند، جایگزین می شوند و سپس نخبگان دیگری به معارزه با آنها می پردازند. نظم آنها را به هم می زنند و غیره. پارتو با نظریه پردازی بلند پروازانه خود پارا از این هم فراتر می نهد. به اعتقاد وی در پس بسیاری از دعاوی و تحرکات سیاست آنچه پیوسته برجاست بازماننده هاست. بازماننده ها ها و منافع هستند که در حالت تهاجمی به صورت ترکیبات تازه و در حالت تدافعی به صورت مجموعه ها و نهادها عمل می کنند. بازیگران اصلی در این راستا نخبگان هستند. سنت ها،, ها، عقاید و ایدولوژی ها به نظر پارتو مشتقات و برساخته از این بازماننده های اصلی هند. این حقیقت که حوزه سیاسی گرفتار خصیصه نخبگرایانه است، مشکلی مشکلیست که حتی در جوامع مدرن غربی خود را به ای نشان می دهد. و اندیشمندان انتقادی از آن بحث می کنند و به طریق اولا در جوامعی با ساختارهایی از نوع ایران مسئله مزمن تاریخی است. خصیصه نخبهگرایانه سبب می شود افراد و گروه های اجتماعی از مشارکت کنشمند و خداگاه بی باشند. در نتیجه نمی توانند تحقق ذات کنند و به مشارکت به مفهوم آرمانی کلمه و نیز خودگردانی خود تنظیمی و رهاسازی خود برسند این مشکل در جوامع غربی نیز مورد بحث است نقادان تجدد و نیز نظریه پردازان غربی که دموکراسی واقعا موجود در غرب را با آرمانهای روشنگری مقایسه و نقد و بررسی کردهاند مشکل گرایی را حتی در احزاب جوامع دموکراتیک و سازمانهای سیاسی و بوروکراسی این جوامع به بحث گذاشتند کسانی مثل وبر یا هابرماس این بحثها را در نقد مدرنیته آوردند آنها توضیح دادند که ماشین های حزبی فراگیر فرصتی برای مردم، افراد و گروه های اجتماعی باقی نمیگذارد در این راستا اقلانیت ابزاری نقد شده و بدیل هایی مانند اقلانیت انتقادی و فرهنگی و کنش ارتباطی و زیست جهان و عرصه عمومی برای آن به میان آمده است. گرایی حتی در جوامع دموکراتیک غربی نوعی پلیارشی یا دموکراسی مدرن و غیر متمرکز به وجود می‌آورد. یعنی به جای نخبه‌های خودکامه قدیمی، چند نخبه از نوع دیگر شکل می‌گیرد. از نظر آنها این وضع نوعی جایی و پلیارشی هاست و حکومت به شکل متناوب میان چند گروه برگزیده دست به دست می شود آنان توضیح می دهند مثلا در شمال آمریکا به دلیل وجود مناطق صنعتی و کارخانه ای مردم به جمهوری خواهان و در جنوب که در تملک مزرعهداران و دامداران بزرگ است به دموکراتها گرایش دارند به این ترتیب همواره یک گروه اقلیت خاص در رأس قدرت قرار دارد مردم نیز گاه به این نتیجه می رسند که هیچ گاه به قدرت نمی رسند وقتی مردم به این نتیجه میرسند که در قدرت سهم واقعی ندارند، اسباب انفعال آنها هم می شود. اما بحث اصلی این است که در جوامعی با تاریخ و ساختارهای خاص از نوع ایران، مسئله پارتو ابعاد بسیار قامستری پیدا میکند. چون حتی در حد جابجایی ها نیست، بلکه کشمکش نخبها در کار است. مسئله پارتو در ایران خود را به شکل وحشتناک نشان میدهد چون بر مبنای تقسیمبندی وبر که جوامع را به باثبات یعنی مولد و هرج و مرجی تقسیم کرده است بسیاری از شواهد در ایران حکایت از نوع دوم دارد در جوامع باثبات و به تعبیر وبر مولد مردم ساخت طبقاتی دارند و قشبندی اجتماعی پایدار و ریشهداری در تاریخ و جامعه وجود دارد این ساخته طبقاتی و قششندی اجتماعی در واقع نوعی تعادل طبقاتی در قدرت و متن قششندی طبقاتی ایجاد می کند. در نتیجه تعادلی در طبقات و قششندی اجتماعی وجود دارد و ای مولد شکل می گیرد. اما در جوامع هرج و مرجی نوعی بی‌نظمی و آنارشی وجود دارد که به ویژه با توجه به اینکه مردم اغلب به شکل توده منفعل و بی‌شکل میمانند، و قیشبندی اجتماعی و ساخت طبقاتی ندارند، تاریخشان گورستان معارضان و مدعیان قدرت است. در چنین جامعه‌ای مردم یا سرسپرده نخبگان می شوند و یا اگر خیلی ارتقا پیدا کنند و زیادی قبراغ و چالاک باشند، سرکرده می شوند. در غیر این صورت، زندگی معیشتی خود را به شکل ساده ادامه می دهند و چنانچه با مدعیان قدرت، سر به سر بگذارند، سر به نیست می شوند. چیزی که در هرج هر مرجی وجود دارد نه جا به جایی نخبه ها، بلکه منازعه میان نخبگان است در پس زمینه منازعات نخبگان دعوتهای معارضان به شکل غیر در میان توده نفوذ می کند. در چنین جوامعی معودگرایی گسترش می آبد. هر کس وعده ای می می‌تواند کار خود را پیش برد و برای دوره توده را به دنبال خود بکشد و هرچه وعدهها ها دل باتر باشد مؤثرتر است. در چنین وضعیتی مسئله پارتو پیچیده می شود و کشمکش نخبگان در عوض جابجایی نخبگان خود را نشان می دهد. نظریه عصبیت ابن خلدون نیز می در این زمینه افق کند. ابن خلدون به معنای عام پدر اندیشه اجتماعی است. نبوغ او قربانی ساخت متسلب اشعری در جامعه اسلامی روزگارش شد و در نتیجه نتوانست به رقم تتبعاتش به تأسیس جامعه شناسی موفق شود. نظریه عصبیت ابن خلدون در این فضای معنایی پارتوی وبری در خور تأمل است. بر اساس نظریه عصبیت در تاریخ ما گروهها با یکدیگر معارضه می کردند عصبیت هر گروهی که بیشتر بود بر گروه های دیگر قلبه، برتری و تسلط پیدا میکرد. اینجا دیگر عصبیت به معنای عام انسجام اجتماعی نیست بلکه معنای اخصی دارد و آن این که در محیط معارضه عصبیت یک گروه همیت تایفعی، ایلی و خاندانی ایجاد میکند و کار را پیش میبرد. علاوه بر این نظریات، چند نظریه دیگر نیز وجود دارد که به رغم همه محدودیت‌ها می‌تواند در توضیح بخشی از مسائل جامعه ایران محل ارجاع باشد. یکی نظریه استبداد شرقی کسانی چون مونتسکیو و ویتفوگل است که فرض کرده‌اند شرایط جغرافیایی و سرزمینی برخی جوامع به طور مشخص در شرق اساساً به سبب وسعت فراکندگی، حوادث و مؤلفه‌های اثرگزار دیگر استبدادخیز است. دیگری نظریه مارکس در باب شیوه تولید آسیایی است که بر اساس آن وقتی آب کم است و قنات‌های بزرگ لازم می‌شود و دولت در این کار دخالت می‌کند، نوعی آبیاری و تولید آسیایی خاص شکل می‌گیرد که دولت آتوریته بیشتری پیدا می‌کند. همچنین نظریه وبر در مورد حکومت‌های پاترومونیال و پدرسالار است. مسئله کشمکش نخبگان و دیدگاه پارتو در جامعه و تاریخ ایران شکل پیچیده‌ای به خود می‌گیرد. پدرسالاری سیاسی به ای است که اغلب در عوض جابجایی کشمکش نخبه‌ها روی می‌دهد که با جابجایی نخبگان در تعارض است. ها و ایلها بر اساس هسته اولیه خاندان های بزرگ پدر و ساخت های پاترومونیال شکل می گیرند و اقتدار از خانواده گسترده پدرسالار آغاز می شود. این نوع اقتدار تمایل دارد بر مبنای عصبیت در آن محیط متعارض پیش برود. محیطی که به لحاظ اقتصادی مردم در انفعال سیاسی هستند، مالکیت در آن مشکل دارد، و قدرت در میدانی از منازعات خاندانی و قبیلی جا, جا و دست به دست می شود مرور تاریخی. اکنون کشمکش نخبگان را در تاریخ خود ردیابی می کنیم بنی امیه ساخت پدرسالار داشت و در آن پدرسالاری عشیره عقیدتی و سیاسی درآمیخته بود عباسیان هم همین وضع را داشتند تعارض فرزندان عباس و اومگه و درگیری این دو خاندان به حدی مهم است که به نظر می رسد اسلام تاریخی متأثر از این ساختار پدر سالاری و منازعات آن است. بسیاری از مسائل اسلام تاریخی باستابی از کشمکش های قبیله این خاندان هاست. وقتی بنی اومگه بر ایران سلطه پیدا کرد، مشکلات ساختی کارکردی عرب آن هم در شکل تهاجم نظامی به علاوه معضلات ساختاری جامعه ایران ترکیب بسیار پیچیده‌ای به وجود آورد. خشونت، تحقیر و سرکوب ایرانیان موجب نارضایتیها و دعوتهای اولیه شد. از نیمه نخست قرن دوم هجری بنی عباس به منزله معارض بنی امیه سوار بر امواج تودهی شد که نمونش را در حرکت های ابو مسلم می بینیم. سفاه به قدرت رسید و بنی عباس جایگزین بنی امیه شد. در اینجا شاهد جایگزینی یک خاندان با یک خاندان دیگر یعنی پدرسالاری سیاسی هستیم. در این میدان معارزه های محلی شروع می شود. تاهریان در خوراسان، علویان در تبرستان، سفاریان در سیستان و خوارجی که در بسیاری از مناطق قتل و قارت می کردند، با هم به معارضه پرداختند. با همین نگاه تاریخی میبینیم، ایران قلم است که در آن مردم اغلب به شکل توده بیشکل، منفعل هستند و به سبب ضعف در بنیه خود به نوعی مفعولیت سیاسی دچارند. نخبگان، معارزان و مدعیانی کار را پیش میبرند که در بخشهای مختلف سرزمین گسترده، پراکنده و حادث خیز در حال کشمکش هستند، و وضعیتی از نوع همه علیه همه و جنگ و منازعه مزمن رواج دارد. گردانندگان دستگاه خلافت هم مترصدند بر حسب قلبه هر یک از مدعیان قدرت در ایران سهمی از مشروعیت به آنها بدهند. یعنی مرکز مشروعیت ساز دستگاهی است خارج از قلمرو فرهنگی و تاریخی ایران. و از آنجا مشروعیت های طبعی به منزله سهندهی به مدعیانی اعطا می شود که توانستند بر انواج سوار شوند و اگر مدعیانی با گردانندگان دستگاه خلافت مشکل داشته باشند با استفاده از فتاوا و ابزار نفوظ مشروعیت آنها ستانده می شود و از طریق مدعیان دیگر دیر یا زود موجبات سرنگونیشان فراهم می شود. تاهر، سردار معمون، چون موفق شد خوارج را سرکوب کند، به امیری ولایت مرو گمارده شد. یعنی دستگاه خلافت از یک سرکرده برای سرکوب معارضان دیگر استفاده کرد و اینجا بود که تاهریان به وجود آمدند. تاهریان یا همان پسران تاهر در واقع یک خاندان بودند که یک پدرسالاری سیاسی تشکیل دادند. هستگی پدر سیاسی در یک محیط منازعه و ستیز شکل می گیرد. پسران طاهر یعنی عبدالله، طلحه و علی خراجگذار دستگاه خلافت و بر مذهب اهل سنت بودند. در مقابل آنها علویان شیعی در تبرستان و صفاریان در سیستان و خرمدینان در آذربایجان به معارضه با بنی عباس و در نتیجه معارضه با طاهریان پرداختند. تاهریان هم به دلیل موقعیتشان در مقابل علویان، خرمدینان، صفاریان و به دلیل سرکوب خوارج از خلیفه مشروعیت ستاندند. این اتفاقات در قرن سوم هجری و تا نیمه آن رخ داد. از سوی دیگر، صفاریان در نیمه دوم قرن سوم با طاهریان، علویان، خوارج و دستگاه خلافت در کشمکش بودند. در واقع کسی که میتوانست عصبیتی به وجود آورد و قدرت خود را در یک خاستگاه ایلی و خاندانی اعمال کند، در این محیط پر معارزه کار را پیش می برد. مشهور است وقتی بزرگان نیشابور از یعقوب لیس حکم امارتش را میخواهند شمشیر برهنش را بیرون می کشد و آن را عهد خود می نامد. در سوی دیگر فرزندان بویه را می بینیم، بویه، از سرداران امیر نصر سامانی و پسرانش علی، حسن و احمد از سپاهیان و عمرای زیاری بودند که در قرن چهارم هجری نواهی مختلف ایران را تا بغداد تصرف کردند و تا تعویض خلیفه پیش رفتند. گردانندگان خلافت چون دیدند با آل بوی مشکل دارند، از طریق معارضان دیگر یعنی غزنویان و سپس سلجوقیان، آنها را از میان برداشتند. این وضعیت و محیط نیز با نظریه معارزه نخبگان قابل توضیح است. سامانیان از امیر اسماعیل سامانی شروع شد که از عمرای منصوب معمون در ماورا و نهر بود. با سرکوب سفاریان که برای دستگاه خلافت مشکل ساز بودند و دستگیری امرولیس سفاری اسماعیل سامانی حکومت خراسان را از جانب خلیفه به دست گرفت. سامانیان تا اواخر قرن چهارم روم قمری حکومت کردند. غزنویان غلامان و مزدوران دوره سامانی بودند که با سرکوب مدعیان قدرت در مقابل سامانیان، قدرتی به دست آوردند و با نزدیک شدن به جناهی از گردانندگان دستگاه خلافت که در رأس آن القادر بالله بود سرکار آمدند. جریانهای معارض می‌دانستند برای بقا باید با چه جناهی در دستگاه خلافت لابی کنند. مشروعیت بستانند و در قدرت سهیم شوند و برای اینکه که کارشان را انجام دهند به قزوه کفار در هند و رافزیان یعنی شیعیان و باطنیان در ایران پرداختند که آل بویه مصداق تاریخی آن بود. سلجوقیان قومی شبانکاره در دشتهای شمالی دریاچه آرال بودند که در قرن چهار اسلام آوردند و به عنوان سپاهی در خدمت عمرای مسلمان بودند و سرکرده شدند. از طریق همین سرسپردگی و سرکردگی و در یک فرایند سپاهیگری قدرت را به دست گرفتند و به حکومت رسیدند. توگرول بیک بنیانگذار این سلسله در 429 هجری نویان را سرکوب کرد و خود را سلطان نامید. به دلیل اینکه دستگاه خلافت را از بوییان نجات داد، حکم حکومت خود را از خلیف دریافت کرد و تا نیمه قرن ششم با تشروع قلیز، قدرت را در دست گرفت بعد حمله مقل و فتح بغداد رخ می دهد که نقطه عطف بزرگی در تاریخ ایران به وقوع می پیوندد و آن برچیده شدن مرکز مشروعیت ساز دستگاه خلافت است مرکزی که حدود 525 سال در منازعات نقش مهمی داشت هلاکو این دستگاه را برچید و مرکز قدرت و مشروعیت بخش نخبگان در خلافت سنی از اقتدار افتاد. جای خالی این قدرت را ابتدا امپراتوری مغولستان پر کرد و این زمانی بود که مغولان در مرحله تأسیس و تهاجم بودند و هنوز در ایران مستقر نشده بودند. وقتی مغلان در ایران استقرار یافتند دیگر نتوانستند از طریق امپراتوری مغلستان مسائل را رفع و رجوع کنند. چون میخواستند در ایران حکومت کنند به نوعی عقیده مشروعیتساز دیگر نیاز داشتند. به این ترتیب دعوت شیعی پس از برچیده شدن دستگاه خلافت در ایران زمینه بیشتری برای گسترش پیدا کرد. نمونه مشرویت سازی های شیعی نفوذی بود که خاج نصیر الدین توسی بر هلاکو و رشید فضل فضلالله بر قازانخان و علامه هلی بر الجایتو داشتند. نکته مهم این است که مذهب ایل از بسیاری جهات تابعی از بازی های سیاسی ایلخانان بود. نمونه این وزن را در الجایتو میبینیم که اول مذهب هنفی داشت، بعد مذهب شافعی اختیار کرد، و سپس شیعه شد و شیعه اصناعشری را مذهب رسمی اعلام کرد ولی بعدها دست دور داد در خطبه ها نام خلفای راشدین هم ذکر شود. سپس دوره حکومت دویست و سی ساله صفوی شروع شد که در فاصله دو یورش بزرگ مقل و افغان بود صفویان درگیر دو دولت سنی مذهب عثمانی و ازبک خارج از مرزهای ایران بودند و برای اینکه در این محیط معارضه موقعیت خود را تقویت کنند در مقابل اکثریت اهل سنت داخل و حکومت‌های سنی شمال و غرب ایران فقهای شیعی را که در قلمرو عثمانی وضع مناسبی نداشتند از جبلامل فرا و به آنها در دستگاه ایرانی مناسب علمی دادند تا بتوانند در این محیط معارضه دویست و اندی ساله قدرتشان را حفظ کنند. هفتاد و پنج سال از حمله افغان تا اقتدار آقا محمد خان دوره ملوک و تواف محصوب که عرصه کشاکش سران تواف افشار، زند و قاجار بود و در آن کشمکش نخبگان رواج داشت. تا قاجار، از قزل صفوی بودند که به تدریج از طریق باشخواهی حاکمیت برخی از ولایات را گرفتند وقتی صفویه با حمله افغان پاشید، رؤسای ایل قاجار دیگر چیزی فراتر از قدرت محلی می‌خواستند در نتیجه ایران صحنه کشاکش میان قاجار افشار و زند شد قاجار پس از قلبه بر بازماندگان زندیان در جنوب و شاهرخ میرزای افشاری در خراسان دولت خود را به دلیل موقعیت سوغال جیشی و های خاص در كوهپایههای البرز شهر تهران بنیان گذاردند آقا محمدخان پس از ده سال جنگ و کشتار سرانجام بر تمام سرزمین ایران سلطه یافت در همین دوره دو رویداد مهم اتفاق افتاد یک، در دوره‌ای که نخبگان سیاسی درگیری زیادی با یکدیگر داشتند، فقهای شیعه فرصت یافتند در کنار این ماجراها خود را باسازی کنند و با نوعی استقلال از قدرت سیاسی قاجار در میان توده نفوذ و جایگاه اجتماعی پیدا کنند. دو، از اواخر قاجار نخبگان تازهی ظهور یافتند که از طریق انتشار مدرنیته در ایران شکل گرفتند. تاریخ معاصر ما میدان منازعات و معادلات قدرت نخبگان قاجار و دو گروه دیگر نخبگان یعنی نخبگان سنتی و نخبگان جدید بود است. طی این مدت هزار و اندی سال که به اختصار در چند سطر به آن اشاره شد مشکل اصلی این بود که مردم در ضعف اقتصادی و انفعال سیاسی قرار داشتند و توده بیشکل بودند. در نتیجه، معارضه گروه‌ها با یکدیگر در یک ساخت پدر سالاری صورت می‌گرفت و چیزی که در ایران اتفاق می‌افتاد بیشتر جا, به جا شدن قدرت و دست به دست شدن آن بود. قدرت در میدانی از منازعات دست به دست می‌شد و تسلط برتری و قلبه تعیین کننده بود. هر گروه از نخبه‌ها که غلبه می‌یافت، حقیقت را نیز تعریف می‌کرد. به تعبیر ابن خلدون بدون عصبیت گروهی و میانگروهی کاری پیش نمی رفت. این عصبیت هم بیشتر شکل تائفعی، ایلی و خاندانی داشت گاه مذهب هم باستابی از این عصبیت های خاندانی، ایلی و تائفعی و مکانیسمی برای نیل به قدرت می شد تأثیر محیط پرکشاکش نخبگان بر خلقیات اجتماعی اکنون می با نگاه سیستمی ابعاد تأثیر تاریخ پرکشاکش نخبسالار در ایران را بر خلقیات اجتماعی درک کنیم اخلاق در سطح خرد رفتار و گزینش فردی است اما وقتی به سطح میانی و کلان میرسد نهادها باید دیده شود اینجاست که فرایندها و ساختارها نقش خود را بر اخلاق میزنند و موثر میشوند معنای اخلاق احترام به خود، احترام به دیگری و احترام به محیط است. منظور از محیط در اینجا محیط اجتماعی، محیط زیستی، محیط کائنات، محیط هستی و اساساً هر دیگری و غیر از خود من است. در ایران این احترام به خود که پایه و اساس اخلاقی بودن بشر است، لطمهی ساختاری خورده و به صورتی عمیق آسیب دیده است. هرچند کم نبودند ایرانیانی که بر حسب نیروی فردی اخلاقی درون خود تا حدودی از حوزه تأثیر مخرب این نهادها بر اخلاقشان بر کنار ماندند، عموم توده اغلب در معرض آسیبها و لطمات جدی به خود حرمتی بودند، چون در محیطی به سر می بردند که همه سهم میخواستند. در چنین محیطی فرد احساس میکند خود او هم یک طرف از این سهم خواهیست چون در جایی زندگی میکند که رابطه ها بیشتر از نوع باجخاهی و خراج گذاری است در محیطی از کشمکش نخبگان به بیشتر مردم عادی احساس بد مفعولیت سیاسی و بازیچه بودن دست میدهند احساس مفعولیت عزت نفس انسان ایرانی را تهدید میکرد وقتی انسانی احساس میکند مفعولیت سیاسی دارد جایی برای عزت نفس باقی نمیگذارد کسی که نفس خود را خار میشمرد و برای خود احترامی قائل نیست، هر شرری از او انتظار می‌رود. عزت نفس به تعبیر روانشناسان مبنای اخلاقی شدن است. انسان ایرانی همواره در مرز این بوده که تفکر علّی خود را از دست بدهد. اینکه من علت حوادث نیستم و کار نیستم تهدیدی برای اخلاق اجتماعی بوده است. فرد خود اثر بخشی خیش را از دست می دهد و به این نتیجه می رسد که یا باید دامن برکشد و گلیم خود را بیرون برد و یا تابعی از این میدان پر پرکشاکش نخبگان باشد با یکی بر دیگری. اینها همه اخلاق ستیز و اخلاق بربادده بودند چون عزت نفس را از آدمی می ستاندند. دومین بعد اخلاق حرمتداری دیگران است. حرمتداری دیگران هم از طریق تعصب درون گروهی و فقدان توافق میان گروهی از بین رفته است. درون گروهها ها تعصب مطلق و در میان گروهها ها فقدان توافق به صورت فاحش نهادمند شده و عادتواره گفتگو آموخته نشده است. اولین کاری که معمولا موقع اختلاف ها انجام میگیرد قهر کردن است. حتی زن و شوهر که در یک اجتماع کوچک یعنی خانواده زندگی می کنند معمولا با اولین مشکلی که پیش می آید، درست همان جایی که باید گفتگو شروع شود گفتگو را می می‌کنند قهر گروهها با هم قهر میان حکومت‌ها با آنها و سایر قهرها دشمن خلقیات اجتماعی است این قاعده به وجود می آید که دشمن دشمن من دوست من است در این حال دوستی ها کمتر سمیمانه و بیشتر بر اساس دشمنی با دشمنان مشترک است. نتیجه بیاعتمادی به دیگران نیز از پشت خنجر زدن و فرصت است. در نتیجه سرمایه اجتماعی کاهش میابد. اعتماد از بین میرود و جای آن را بیاعتمادی بدبینی، ترس از دسیسه و دسیسه چینی، پنهانکاری و قیبت میگیرد. قیبت از نوع انتقاد نیست، یک خصیصه بیمارگونه رفتاری و اخلاقی است که انسانها پشت سر هم هستی بیجان یکدیگر را می‌جوند و همدیگر را پایمال می‌کنند. در این محیط احترام به دیگری آموخته و نهادینه نمی‌شود، بلکه درویی و نزایل آن رشد می‌کند. سومین مشکل خرقیات اجتماعی لطم خوردن احترام به روح جمعی در جامعه است. به تعبیر دورکیم، آن روح جمعی که او حتی الوهیت را تسعید یافته و والایش یافته آن می داند، افول پیدا می کند. این روح جمعی یک کلیت است و در واقع جامعه را بازنمایی می کند. این سه یعنی الوهیت، کلیت و جامعه ارزش های اجتماعی را نگهداری می کند. وقتی احترام به روح جمعی در جامعه به کلی لطمه بخورد، دیگر جایی برای اخلاق، نمی‌ماند. وقتی احساس شما می‌گوید دست بالای دست بسیار است، یعنی محیط غیر اخلاقی است. چرا گفته می‌شود سیاست بی‌پدر و مادر است؟ چون در واقعیت تاریخی ایران سیاست بی‌پدر و مادر بوده است. سواری رایگان ها و سیکل حاجت و طاعت بوده است. چون حاجت دارم، اطاعت می‌کنم. این با روح مشارکت‌گرایی و مسئولیت‌پذیری مغایر است. اگر چنین نبود، سیاست اینقدر برای ما بی پدر و مادر نمیشد. زیرا کسانی مثل افلاتون و ارستو درباره سیاست مدن به مسابه زمینهی برای سعادت بشر و به منزله امر اخلاقی بحث کردند. محیط تعارض نخبگان و عصبیت ناشی از آن منشع افول حس پیوند جمعی، عدم اعتماد به دیگری به خود و آینده بود. هر کس قدرت دارد، پیش میبرد و فعالیت مخرب به جای مولد مینشیند جامعه پیشبینی ناپذیر میشود و در این هرج و مرج افق اخلاق گرفته است هنوز بقایایی از این حصا اینجا و آنجا در بخشی از فرهنگ کوچه و بازار دیده میشود نوشتههای پشت کامیونها از جمله این موارد است تک ها و شبه جمله‌هایی که بخشی از فولکلور و فرهنگ عمومی ما و باستابی از خاطراتی است که بر زندگی روزمره مردم و تجربه های آنها سایه می‌اندازد اینها به نوبه خود نشان می‌دهد که در ازهان ما چه می‌گذرد و نگاه ما به اشیاء و پیرامون و دیگران چگونه است چند نمونه ذکر می‌شود یک گذشته تلخ آینده نامعلوم این می تواند از تصور جامعه هر مرجی باشد. دو. از پی شبهای بی فردا دویدن یا در این درگه که گه گه که که که که شود ناگه مشو قرره به امروزت که از فردا نه ای آگه. اینها می تواند باستابی از بی به آینده باشد. البته این حقیقتی است که بشر ذره بی کوچکیست است و از فردا هم هیچ خبری ندارد. همه ی انسان ها حتی در توسعه ترین جوامع این ابهام را دارند. اصولا هر چه ابهام بیشتر باشد نشان دهنده توسعه یافتگی است ولی در اینجا روی سخن با بیاعتمادی منفی است. 3 یا زامن آهو امان از این هیاهو در هياهو و کشمکش یک جامعهی هرج و مرجی انسانها به دنبال زامنی برای امنیت ضعیفان هستند چهار به یادگار نوشتم خطی ز دلتنگی به روزگار ندیدم رفیق یک رنگی یا در ها اگر صد سال سرگردان شوم به از آن که در وطن محتاج نامردان شوم و غیره اینها نشان دهنده ها و دسیسه هاست. پنج بر چشم بد لعنت. اصولاً عبارات مربوط به ترس از چشم بد و پناه بردن از آن که این همه بر در و دیوار ما نقش بسته، باستا به فرهنگ واقعی ماست. مردم یکدیگر را و حتی چشم یکدیگر را هم تهدیدآمیز حس می‌کنند. دیگری که در حقیقت موضوعی برای اخلاق است و ما با معطوف کردن توجه خود به او می‌توانیم تجربه های اخلاقی داشته باشیم در تاریخ پر ما به یک تهدید و منشأ بیاعتمادی و چشم بد و دسیسه بدل شده است